سلام و عرز و ادب خدمت شنوندگان کانال تلگرامی هزار افسان داستانهای افسانه‌ای سوتی با کتاب های اوکراین در خدمتتون هستم داستانی را از این کتاب بهتون تقدیم میکنم از بخش دوم قصه های سهر و جادو و اسم داستان هست مرد توحید است و پسرانش روزی روزگاری مرد فقیر زندگی میکرد که سه پسر داشت بزرگترین پسرش پترو، دومین پسرش گابریلو و کچکترین اونهای ایوان نام داشت. روزی پدرس پسرش رو صدا میزن و به اونها میگه عزیزانم میبینید که من دیگه پیر شدم و کاری از دستم بر نمیاد. شما سه پسر رشیدم به حد کافی بزرگ شدید و باید روی پای خودتون بیسین و گیلیم خودتون رو از آب بیرون بکشین. پس برید و کاروباری پیدا کنید و یک ساله دیگه به خونه برگردین. اونها با پدر خداحافظی میکنند و هر کدوم به راهی میرند و در جایی از این دنیای بزرگ به کاری میپردازند. یک سال میگذره. نخوست اولین پسر به خونه برگشت و با خود مقداری زیادی پول به خونه آورد. روز دوم پسر دوم با مقداری زیادی طلا و روز سوم پسر کچیکتر با دستای خالی به خونه برگشت. پدر که اون رو اینچنین ناامید و شکست خورده و دست خالی دید خشمگین شد و اون رو از خونه بیرون انداخت. پسر یکی غمگین قمگین به دنیای وحشی گذاشت و در حالی که از سرنوشت نوشته خودشش خبری نداشت رفت و رفت تا شب هنگام به جنگلی گسترده و تاریک رسید. روی کنده درختی نشست و آخرین تکنانی رو خونه آورده و خورد و با جبیدن نام با خودش فکر کرد الان باید چیکار کنه. کجا به روچاره مشکلش چیه؟ غرق این فکرای جور و جور بود که ناگهان روبروی خود قولی سهم گیندید. به شدت تو اون تاریکی ترسید اما یک دفعه گول شروع به صحبت کردن کرد و پرسید پسرم چرا انقدر غمگین و افسرده ای؟ چه آرزوی در دل دارید؟ پسر همه چیز رو برای قول توضیح داد و قول به اون گفت اگه دلش میخواد میتونه به خدمت قول لر بیاد. پسر که خسته و گرست و فقیر بود قبول کرد و به دنبال اون راهی شد. رفتند و رفتن تا به جنگر رسیدند. جایی که قول خونه ای داشت و ایوان در اون خونه ساکن شد. در خانه قول کار خاصی نبود که ایوان انجام بده. اون کم کم به ایوان شیوه از سواری، تیرن شمشیر بازی، خوندن و نوشن و حساب داری. آموخت یک سال گذشت، گول وارد خونه شد و گفت ایوان بلند شو اسبت رو زین کن، سوار شمشیر به دست بگیر و به سمت جنوب برو، برو تا به دو کوه برسی، پشت اون دو کوه قلعه سیاه میبینی که دور تا دور اون دیواری سیاهی کشیده شده. ایوان آماده سفر شد، با گول مهربان خداحافظی کرد، سوار شد و به راه افتاد روزها و شبهای فرامانی رفت و رفت تا به قلعه سیاه و دهشتناکی رسید که در دل شجاعه ترین جنجویانم حراس مینداخ وارد قلعه شد و ناگهان چشمش به اشتهایی افتاد که گرز سنگین و بسیار بزرگی تو دست داشت و با دیدن ایوان مثل رعد و بق قرش کرد و وریاد کشید کیستی و با چه جورتی به سرزمین من گذاشتی؟ ایوان جواب داد اومدم تو با تو به جنگ و مردم را از تو خلاص کنم. اجدها به شدت و با صدای محیب خندید و گرز آنهنینش را به سمت ایوان پرتاب کرد. ایوان سر خودش را دوزید و گرز،, گرز سنگین و کشنده ای اجده ها پشت سر اون روی زمین افتاد. ایوان توی یک چشم هم زدن خم شد و اون گرز رو برداشت. و چنان بر سر اشده ها کوبید که حلاک شد. ایوان و امیدوار به راه خودش ادامه داد و به قلعه سیاه رسید و اونجا اسبی سیاه دید با زین و برگی سیاه سوار اسب سیاه به سوی خونه روونه شد قول مهربان با دیدن ایوان که پیروز شده و با اسب سیاه و تنومن برگشته بسیار خوشحال شد خدا رو شوی کرد و اون رو به گرمی تو آغوش گرفت و اسب رو به سمت استابل خودش برد روزها و ماهها در پی هم اومدند و رفتند و ایوان روز به روز قوی تر و عاقلتر و بخته تر می شد و با آداب به زندگی و دلاوری بیشتر و بیشتر آشنا شد. روزی قول بهش گفت الان تو باید به سمت شمار بری و با اجده هایی که در دل جنگری ترسناک زندگی می و در حق مردم ستم فراوان روا می داره و خون اونها رو میرزه به جنگی و مردم بیچاره رو نجات بدی. تو باید به اون جنگل بری و در اون باطلاقی سبال عبور میبینی. در دل باتلاق کاخی سرخ رنگ میبینی که اجدهات اون زندگی میکنه. تو بیدرنگ باید اجده رو بکشی. با کشتن اون باتلاق خشک میشه و مردم میتونن با خیال راحت گندم بکارند و زندگی آسوده و شادی داشته باشند. ایوان اطاعت کرد و روزها و هفته ها رفت و رفت تا به جنگلی ترسناک و تیر و تار رسید. جنگلی که هیچ چیز در اون پیدا نبود. اما ایوان کوشید که هر طور شده راهی رو به جلو پیدا کنه و پیش بره. خسته بود و چاره نداشت که شب رو در اون جنگله وهمناک بمونه تا ببینه روز بعد چی میشه. اسب رو به درختی بش تا مبا در شب تاریخ گمبش و روی عرف های خوننگ جنگ دراز کشید. و چون بسیار خسته بود دراز کشیدن و غرق خواب شدن همان. اما ناگهان از خواب بیدار شد و دید دنیای اطرافش دگرگون شده. درختها عوض شدند و اطراف او در نوری زیبا و خیر کننده میدرخشه و لحظه به لحظه زیباتر میشه. دشت با گلهای زیبا و معتر فرش شده بود و لابلای شاخ و برگ درختها پرندگان نقمه های شاد و گوش نواز سر داده بودن. نقمه هایی که ایوان تا اون لحظه هرگز نشنیده بود. در حالی که مدهوش نوای روح نواز پرنده ها شده بود دید گروهی از پریان دریایی از دریاچه بیرون اومدن تا با هم بخونن و شادی کنند. اونقدر زیبا بودند که ایوان از شدت حیرت خوشکش زده بود و نمیدونست که خواب می بینه یا بیداره. ناگهان انواع حیوانات ریز و دروش هم دوروبر بر پریانه دریایی گرد اومدن. هیچ حیوانی حیوان دیگر رو آزار نمیداد. ناگهان چشم ایوان به شاخه درخت بالای سرش افتاد و جغد پیری رو دید که کنارش یک قمری نشسته بود. و با هم گرم صحبت بودن. ایوان به دقت گوش داد و شنید که جغت پیر داره به قمری میگه قمری جان این جنگل سهر و افزون شده بود و همه چیز در اون مرده و افسرده و تاریک بود. و خوشبختانه با اومدن این جوان بود که همه چیز دوباره جان گرفته و حیوانات اینجوری دلزنده و شاداب شدند و میزنند و میخونند. اون که از شنیدن این خبر شگفت زده و خوشحال شده بود دوباره به خواب رفت و هنگام غروب بیدار شد و دید که در لب مرز جنگل خوابیده و جلوی اون دشتی پر از گل گسترده است. با خودش فکر کرد چرا باطلا خوش شده بود؟ باید برو و کار اجده‌ها به پایان ببره. پس پشت از پرید و تخت و رفت و رفت تا به قلعه سرخ رنگ رسید. که دیواری سرخ دور تا دور آن کشیده شده بود. وارد قلعه شد و اجده سرخ رنگ و خشمگین دید. در یک لحظه جنگ بین اون دو در گرفت و ایوان این بار نیز با هیله ها و فنونی که قول دانه بهش یاد داده بود تونست اجده سرخ رو بکش و اسب و یراق و اون رو که سرخ فام بودند، بردار و با خودش ببره. در راه بازگشت مردم رو دید که شادمانه در حال برداشت محصول خودشون بودن و دیدن و خوشبختی اونها در دل احساس و, و رضایتی شیرین کرد. عصف رو زد تو با سرعت به خونون نزد قول برگرده. قول این بار نیز از اون به گرمی استقبال کرد و اسب سرخ رنگ و ازش گرفت و به استبل برد. ایوان چند روزی بیش نتونست استراحت کنه. چرا که به توصیه قول مهربان و دانا باید به جنگ دیو سفید میرفت تا اون رو بکش و مردم رو نجات بده. ایوان باید از صحراهای بایر و بیابانهای داغ و وحشتناک میگذشت. با مارهای سمی و قولهای بزرگ می‌جنگید، جنگید. از عظیم و سرا از سرا را از سر راه بر می داشت. تا اون رو تو تارهای زخیم خودشون اشیف کنند و بکشند و ارواح خبیس در پی اون بودند که اون رو از راه خودشون منحرف کنند و در این راه پر از عجایب و خطرهای گوناگون هرگاه به رودخونه یا دریاچه میرسید و میخواست دست روی بشویه جرعه آبی بخوره اون رودخونه یا دریاچه به سرعت ازش دور میشدند و به رنجی که اون کشیده بود تا به اونها برسه اعتناعی نمی‌کردند. ایوان اما با تمام این مشکلات جنگید و پایداری کرد رفت و رفت تا به قلعه سفید رسید با دیو سپید جنگید اون رو کشت و اسب سفید دیو رو دید سوارش شد و به خانه قول برگشت در بین راه دریافت که تمام بیابان غرق در گل و گیاه شده دریاچه لبالب از آب پر شد و زیر نوازش نور و آفتاب می درخشید. و پرنده ها تو شاخ و برگ درختان شادترین این آواز خودشون رو میخونن. به خانه گول رسید. اسب و یراق سفید رو به گول داد و به آموختن فنون و هنرهای تازه پرداخت. ایوان از این نکته متعجب شده و که چرا گول که اون همه نیرومند و ماهره خودش به جنگ اجده ها و دیو نمیره و اونو یک تنه به این نبرت های خطرناک میفرسته؟ روزی از گول پرسید. چرا چنین میکنه قول خندید و گفت هنر این نیست که کارهای بزرگ رو بزرگان و باهوشان انجام بدن. شگفتی دنیا در این نگه بیشتر کارهای مهم و بزرگ رو انسانهای ضعیف اما دارای هوش و اراده قوی انجام بدن. و این سیباتر و با عرضش تره. ایوان از این پاسخ خردمندانو نقض قول بسیار خورسن شد و به راز کار او پی روز اول ایوان را به سفری دعوت کرد. پس سوار اسب شدند و به راه افتادند. به شهری رسیدند که همه مردم اون سوگوار بودند و پرچمهای سیاه از میله‌ها آویخته بودند. ایوان از اونها دلیل سوگواری و پریشون حالیشون رو پرسید و مردم شهر گریان و درمونده جواب دادند که اجدعاهای روباوری در نزدیکی شهر پیدا شده. و نیمی از احشام شهرها و روسته رو خورده و نابود کرده و الان به مردم هشدار داده که اگه دختر سزار رو برای اون نبرن به زودی بر میگرده و اونها رو میکشه و بقیه گوسفنده و گاوهای های رو میخوره و اونها رو به خاک سیاه میشونه. دختر سزار هم بسیار مهربان و فداکاره و پذیرفته که برای نجات جان و زندگی مردم پرو همسر اجدها بشه این کار هم برای او هم برای ما بسیار سخت و تلخ و جانکاهه. سزار نیز اعلام کرده که اگه مردی شجاع و پهلوان بتونه اجدهها رو بکشه دخترش رو به اون میده دانا رو به ایوان کرد و گفت تنها کسی که میتونه این اجدهاهای سهرگین رو بکشه تویی تو باید بری و اون رو حلاک کنی و مردم را از شر رو اون خلاص کنی و داماد سزار بشی ایوان سوار بر اسب سیاه شد و به سوی اژدها حرکت کرد وقتی به نزدیک خانه اژدها رسید خبردار شد که دختر سزار برای نجات جان و زندگی مردم به سمت خانه اژدها در جنگل حرکت کرده پس با عجله اسب خودش رو به جولان در آورد پاخت و رفت و رفت تا در دل جنگل به قاری رسید و فریاد زد ای دختر زیبای سزار تو بسیار جوانی و زوده که بمیری یا اسیر اجدها بشید. دختر سزار که ناامید و افسرد حال بود و اشک میریخت با دیدن ایوان امیدوار و دلزنده زنده شد عشکهاش رو پاک کرد و شادمانه لبخند زد ایوان به داخل قار رفت و اجده رو دید که فریاد میزن و به سمت اون حمله بر بود. ایوان با شمشیر خود به سمتش حمله کرد و یکی از سرهای اون رو قطع کرد. اما ناباورانه دید سر دیگری به جای اون سبز شد. بارها و بارها این کار را ادامه داد و هر بار سری رو میبرید، سری دیگر به جای اون بیرون میومد. اجدهها از دهان خودش انبوهی از آتش سوزان بیرون میافکن تا ایوان رو خاکستر کنه. ناگهان اجدهها موفق شد ایوان و اسبش رو روی زمین بندازه. اون وقت بر روی سینه ایوان نشست تا اون رو خفه کنه. ایوان با ضربه شمشیرش اشتها رو حلاک کرد. اژدها از شدت درد و فریادی زد که تمام برگ های درخت رو روی خاک ریختن. این فریاد فریاد مرگ اجدها بود ایوان خسته و غرق عرق و خاکالود بلند شد و دختر سزار رو دید که با افتخار و عشق و تحسین به اون نگاه میکرد ایوان دختر زیبای سزار تو نجات یافتی و اکنون میتونی به قصر پدرت برگردی دختر سزار گفت نه من تنها نمیرم با تو میرم که جان من و مردم کشورم را نجات دادی مردم سوپوار از دست دادن دختر سزار بودند که با دیدن پیروزی ایوان و بازگردن دختر سزار فریاد شادی سر دادند روز بعد در تمام کشور جشن پیوند ایوان شجاع و دختر زیبای سزار برپا شد یکی از مهمترین مهمانان این جشن راهنمای ایوان بود که از همه شادتر بود و حاصل دسترنجش رو میدید و افتخار میکرد. ایوان و دختر شاه سالهای سال غرق در شادی و لذت با هم زندگی کردند و اگر هنوز هم زنده باشند غرق در لذت و شادیاند. کانال تلگرامی هزار افسان داستان های ای صوتی، نشانی کانال تلگرامی تی نقطه می سلاش مهران دوستی تی نشانی وبلاگ ما ام s t i b l o g f com کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد دوستانی